بسم الله الرحمن الرحیم نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش ای مردم از پروردگار خیش بترسید بیگمان زلزله قیامت امر عظیم است روزی را که بینید در آن هر شیردهنده کودکان شیرخار خیش را فراموش میکند و هر باردار حمل خود را سخت میکند و مردم را مست میبینید اما در حقیقت مست نیستند بلکه عذاب خدا شدید است و در میان مردم گروهی اند که بدون دانشی درباره خداوند به مجادله می پردازند و از هر شیطان سرکشی پیروی می کند در حق شیطان نوشته شده که هر که او را دوست بگیرد شیطان او را گمراه می سازد و او به عذاب دوزخ رهنموند می شود. ای مردم، اگر در مورد خیز در شک هستید، چرا در این نمی اندیشید که گمان شما را از خاک آفریدیم باز از مطفق، باز از خون بسته، باز از باشه گوشت، که بعضیشان خفقت کامل دارند و بعضی خفقت کامل ندارند، تا قدرت خیش را به شما واضح سازیم و هرکی را بخواهیم تا ماوید معین در رحیم ها باکی می گذارید، باز شما را به شکل تقل بیرون می آورید تا چون به سن رشت رسیدید بعضی از شما می میرد و بعضی از شما به بدترین عمر می رسد تا هیچ نداند بعد از آن که می دانست و زمین بیبرگو بار را می بینی، پس چون بر آن آب فرو ناگاه می بینی که به حرکت می افتد و نمو می کند و در آن انواعی روی های زیبا می روید. این به سبب آن است که خداوند هم اوست حق و هم اوست که مردگان را زنده می و هم اوست که بر همه اشیاء قدرت دارد بیگمان قیامت آمده نیست، در آن شکی نیست و بیگمان خدا کسانی را که در قبرهایم برمی انگیزد با این هم در میان انسانها کسی پیدا می شود که بدون دانش، بدون رهیابی و بدون آنکه که کتاب روشن او را رهنمایی کرده باشد با مجادله می پردازد با اهانت و تکبر خود را دور می دهد تا مردم را از راه خدا گمراه بر سازد برای او در دنیا رسواهی است و در روز قیامت به او عذاب آتش سوزنده را می چشد خداون می گوید این به سبب است که دستهای تو از پیش فرستاده است و خدا هرگز بر بندگان خیش ستمگار نیست از مردم کسی هست که خدا را به یک پهلو برای دست یافتن به منافع خاص خود می پرستند اگر به او خوبی رسد به آن مطمئن می شود اما اگر به مصیبت مبتلا شود روی خود را بر او در دنیا و در آخرت من شده و همین است مصران آشکارا بجرد خدا چیزی را پرستش می کند که نه برایش ضرر رسانده می تواند و نه هم نفع و این است گمراهی دور از حق کسی را پرستش می کند که ضررش از نفع و نزدیکتر است چی بدیاوری و چی بد دوستی بگمان خدا آنانی را که ایمان آوردند و کارهای نیک انجام دادند و به های داخل می کند که در زیر درختان آن جویبارها جریان دارد حقا که خداوند آنچه می خواهد به سر می بدین گونه ما آن قرآن را آیه های روشن نازل کردیم و بیگمان خداوند هرکی را بخواهد رحیب می سازد مسلمانان، یهودیان، سادیها، نصارا، مجوس و مشتکان خداوند در میان ایشان در روز قیامت داوری می کند حقا که خداوند در همه چیز گواه آیا ندیدی هرکی در آسمانها و هرکی در زمین است خدا را سجده می کند و نیز آفتاب، ماه، ستارگان، کوها، درختان، جانوران و تعداد کثیر از مردم و بر تعدادی کثیر آنها عذاب متحقق شده است و کسی را که خدا خوار کند هیچ کسی نمی تواند او را گرانی دارد حقا که خداوند هرچی بخواهد می کند این دو گروه متخاسم در مورد پرویدگارشان و خسومت پرداختند پس آنانی که کافر شدند برای ایشان از آتش جامعهای بریده شده است از بالای سر ایشان آب جوش انداخته بیشان. با آن آنچه در هایشان است و نیز جلدهایشان می بیشون و افزون بر آن برایشان است از آهن. هرگاه بخواهند از آن از غم و اندوه بیرون آیند به با آن بازگردانیده میشوند. و برایشان گفته می شود عذاب آتش را بچش. بیگمان خداوند آنانی را که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند و به های داخل می کند که در زیر درختان آن جویبارها جریان دارد. و در آنجا بازیورهای دست بندهای تلاو و مرواری پوشانیده می شوند و لباسهایشان در آنجا حریر است و بسوی سخن نیکو یعنی بیالایش هدایت می شوند و برای خداوند ستوده رحمائی می شوند بانان که کافر شدند و دیگران را از راه خدا و مسجد حرام باز میدارند، دارند جایی را که برای همه مردم عبادتگاه قرار دادید چی مردم بومی آن سرزمین باشند و چی به حیث ظاهر همه مساوی و هر که در آن به ظلم انحراف جوید او را از عذاب دردناک می چشن. و به یاد آور وقتی را که برای ابراهیم جای خانه کعبه را آماده ساختیم و به او گفتیم با من چیزی را شریک مگردان و خانه ام را برای تواف کنندگان قیام کنندگان رکوع کنندگان و سجده کنندگان واکساست مردم را به حج فراخاند تا به سوی تو پیاده و سواره بر مرکب های لاغر و از راه های دور بیایند تا سود خیش دسترسی یابند و در روزهای مشخص نام خدا را و چارپایانی که به ایشان ارزانی گردانیده ببرند یعنی آنها را به نام خدا قربان کنند از گوشت اینها حیوانات قربانی شده بخورید و نیز انسان های پیانوای فقیر را بخورید سپس چرک بدن خود را برطرف کنند و به نظرهای خیش وفا نوائند و به دور بیت العتیق یعنی خانه خدا توافت کند این است مناسق حج و حک حرمات خدا را یعنی چیزهایی را که خدا به آن حرمت داده تعظیم کند این برای او در نزد پروردگارش که است برای شما چارپایان حلال شد جز آنچه برای شما خوانده می شود از این رو از پلیدی بودها خودداری نمایی و, و نیز از سخن درو بپرهیزید در حالی که با خدای خود راست باشی به با او شریک نیاوری و کسی که با خدا شریک آورد بوی از آسمان افتاده و آنگاه او را پرندگان را بوده یا بعد او را در محل دور انداخته است این از حال مشرکان و هر که شعیر خدا را تعظیم کند پس این بزرگ داشت از پرهیزگاری دل هاست در آنها برای شما منعفیز تا وقت معین سپس محل قربانی آنها سوی بیت العتیق یعنی خانه کعبه است برای هر اومت قربانی قرار دادید تا دا نام خدا را به آن چرفایانی که به ایشان ارزانی کرده است در هنگام زده آنها ببرند پس خدای شما معبود یگانه است خدا را به او تسلیم کنید و متواضعان را بشارت کنید. کسانی که چون نام خدا برده شود دلهایشان را ترس فرا گیرد و سابران را چون مصیبتی به ایشان برسد شکی باید و آنانی که نماز را به کمال و تمام برپا می و از آنچه به ایشان روزی داده این خرج می کنند و شترهای قربانی را برای شما از شعهیر خدا قرار دادید. در آنها برای شما خیر است. و در حالی که صفت بسته ان نام خدا را بر آنها ببرید، پس چون گردن زده شدند و به پهلوهای خود افتادند، از گوش آنها بخورید، و تنگ را که قانیان و آنهای را که قانه نیستند، از آن بخورانید، برای شما حیوانات را این چنین رام گردنیدید، تا با که شکر کنید. هرگز به خداوند گوشت آنها و خون آنها نمی رسد، بلکه به او پرهیزگاری شما می رسن. برای شما حیوانات را این چنین رام گردانیده تا خدا را به بزرگی یاد کنید و نیکوکاران را بشارت بدید بیگمان خداوند سایس کافران را از مسلمانان دفع می کند بگمان خداوند هیچ خاین ناسفاسی را دوست ندارد به کسانی که با ایشان مقاتله می شود اجازه جنگ داده شده به سبب آنکه به ایشان ستم شده است و حقا که خدا بر مصرت دادن ایشان تواناست آنانی که به ناحق از دیارشان بیرون آورده شدند جز اینکه می بر پروردگار ما الله است و اگر خداوند یک دسته از مردم را به وسیله دسته دیگر مردم دفن کند بگمان سومعه ها، ها، معابد یهودیان و مساجد که در آنها ذکر خدا به کسرت صورت می گیرد و ایران می گردد و خداوند کسانی را که در راه تبلیغ آیین او کمک می کنند یاری می نماید حقاق خداوند توانا و صاحب قدرت منیست کسانی که اگر ایشان را در زمین مستقر گردانیدیم نماز را به تمام و کمال بر داشته زکات میده و به کار نیک امر می کنند و از کار بد نهی می و انجام امور از آن خداست اگر تو را تکذیب کنند بگمان قبل از ایشان قوم نوح عاد و سموت نیز پیانبرانشان را تکذیب کردند و قوم ابراهیم قوم لوط و ازهاب مدین نیز کار را کردند همچنین موسی تکسیب شد و این ترتیب کافران را مهلت دادیم و سپس ایشان را گرفتار ساختید پس انکار حقوبت من چیگونه بود ای بساز شعرها بس از شهرها را که تباه کردیم به سبب اینکه ساکنان آن ستمگار بودند به ای که بر سختهای خود فرو ریختند و ای بسا چاه که متروک شد و ای بسا که قصرهای مستحکم و سر بفرک شیده از سکنه خود شد آیا آنها در زمین سیاحت نکردند تا صاحب دلهایی می بودند که با آن حقیقت را ترک می کردند یا گوشهایی که با آن می از بیگمان بیگمون های ایشان نابینا نمی شود مگر دلهایی که در سیناهاست نابینا می شود و از تو با شتاب زدگی عذاب را تقاضا می و خداوند وعده خیش را خلف نمی و بگمان یک روز نزد فروردگار تو معادل هزار سال است از آنچه شما می و ای بس از قریه ها که به اهل آن محلت دادم در حالی که ایشان ستمگار بودند باز ایشان را گرفتا ساختم و, و بازگشت همگان به سوی من است بگو ای مردم جز این نیست که من بیمدهندۀ آشکار هستم پس کسانی که ایمان آوردند و عمل نیکو انجام دادند برای ایشان آمرزش و روزی کریمانه است و آنانی که در برابر نشانه های ما تلاش کردند و این پندار که ما را عاجز سازند هم ایشانند اهل دوزخ و پیش از تو هیچ رسولی و هیچ نبی را نفرستادیم مگر چون آرزوی برای تأمین رسالتش به دل می پرورانی. شیطان در آن آرزوی او القاعات بعمل می آورد آنگاه خداوند چیزی را که شیطان القاء کرده بود از میان می بود. و بعد از آن خدا آیات خیش را استحکام می بخشی. و خدا دانا و با حکمت است حکمت این رویداد آن بود تا چیزی را که شیطان القاق می کند برای کسانی که در دلهایشان مرزی است و نیز برای کسانی که دلهایشان سخت است و آزمایش کرداند و بگمان ستمگاران در مخالفت یعنی عداوت شهیده و از حق دور قرار دارد و تا آنانی که به ایشان علم داده شده بدانند که بدون شک این وحی حق است و از جانب پروردگار توست و به این ترتیب آن ایمان آرد و دلهایشان در برابر آن نهرم شود و بگمان خداوند راهیا سازنده مؤمنان است سوی راه راست کافران در مورد این وحی همیشه در شکل تا ناگهان قیامت به با ایشان بیاید یا برایشان عذاب روز نهایت نهز است سلطنت در آن روز از آن خداست در میان ایشان رو حکم میکند. از کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیکو انجام دادند در بهشتهای پرنعمت و نازند و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند برای ایشان عذاب رسوا کننده است برای آنانی که در راه خدا هجرت کردند سپس کشته شدند یا مردند بیگمان خدا بر ایشان روزی کوی عنایت می کند و حقا که خداوند هم اوست بهترین روزی دهندگان، بگمان ایشان را دا به جای داخل میگرداند که به آن خوشنود می و بگمان خداوند دانا و صاحب حلم هست این است هرگاه کسی به همان اندازه مجازات کند که با او ستم شده است و باز بر او تعدی شود بگمان خدا او را کمک میکند حقا که خدا بخشایش شگه رو است این به سبب آن است که خدا شب را در روز و روز را در شب داخل می سازد و بیگمان خداوند شنوا و قیناست این به سبب آن است که بیگمان خداوند هم اوست حق و بیگمان آنانی را که ایشان جز نیایش می کنند اومان است باطل و حقاک خداوند هم اوست بلند مرتبه و بزرگ آیا نمی بینی که بگمان خدا از آسمان آب را نازل می کند؟ پس زمین به آن سرسرس بشند حقاک خداوند صاحب لطف و آگاست آنچه در آسمان ها و زمین است از آنی اوست و بگمان خداوند هم اوست بیدیاز و ستوده آیا نمی بینی که خداوند هر آنچه را در زمین است با شما رام گردانید و نیز کشتیها را که در بحر به حکم او در حرکتند و آسمان را نگاه می دارد از آنکه جز به حکم او بر زمین حقا که خداوند به مردم مهربان و بخشانده است اوست که شما را زنده کرد سپس شما را می, می و باز زنده می کند بیگمان انسان ناسپاس است برای هر امتی رویشی در عبادت قرار دادیم که با آن شوه روانم پس نباید با تو در این کار نزاع کنم و ایشان را به سوی فرودگاه دعوت کن حقا که تو به راه راست هستی و اگر با تو نزاع ورزند پس بگو خدا به آن چی می کنید داناتر است خداوند در میان شما در آن در آن اختلاف داشته در روزی قیامت حکم می کند با نمی دانی خداوند به آنچه در آسمانها و زمین است میدانه، بگمان اینها همه در کتاب ثبتند حقا که این برای خدا آسان است با این هم ایشان جز خدا چیزی را که خدا برای آن دلیل نفرستاده و چیزی را که به آن علم ندارند می و برای ستمگاران هیچ مددگاری نیست و چون آیات روشان ما به ایشان خوانده می شود در چهره کافران حالت انکار را می بینی به حدی که نزدیک است به آنانی که آیات ما را به ایشان می خوانند، حمله کنند بگو آیا شما را به بتر از این حالت ناآرام کننده خبر هم و آن آتش دوزخ است خدا آن را به کافران وعده داده و چی بد جایی بازگشت است ای مردم مسئله زده شده است پس به آن گوش دهید بگمان کسانی را که جز خدا نیایش می پونید مگسی را هم آفریده نمی توانند گرچه همه برای آن جمع شوند و اگر مگس از ایشان چیزی را برو باید آن را از مگس باز گرفتن نمی توانند تالق و مطلوب هر دونا توانند خدا را به گونه که لایق اوست قادر نکردند حقا که خدا و صاحب قدرت مونیست خداوند از فرشتگان پانبرانی برمی گزیند و از مردم نیز بیگمان خداوند شنوا و بیناست آنچه را در پیش روی آنها و آنچه در پشت سر ایشان است می داند و همه امور به خدا رجعت می کند ای مؤمنان رکوع کنید سجده کنید پروردگار خویش را بفرستید و کاری نیک انجام دهید تا باشد که رستهگاشد و در راه خدا آنگونه جهاد کنید که حق جهاد او را به جا آورده باشید. او شما را برگوزید و برای شما در دین هیچ مشکلی نگردانید. دینی که آین پدر شما ابراهیم است. هم اوست که شما را مسلمان نامید. هم پیش از این و نیز در این کتاب. تا باشد که پیانبر بر شما و شما بر مردم گواه باشید. پس نماز را به تمام و کمال بجا آورید زکات بدهید و به خدا تمسخ جوری او همین شماست پس چی خوب مولای و چی خوب مددگاری؟